و اهلی و صحبه اجمعین اما بعد بباشید دوباره آغاز میکنیم تلسیه نهممون از مروری بر کتاب الحاد دکتر صالح سندی گفتیم کتاب خیلی مفیدی هست حالا من خودم یکی از اونایی که ازش استفاده بردم انسان نیاز داره به خدا نزدیک بشه خصوصا وقتی که شبهاتی که پیرامون خداوند اون خدایی که ما میفرسیم ایجاد میشه و اون شبهات برطرف میشه انسان یقینش اون قلبش آرام و قرار میگیره اون ایمان و اعتقادش محکمتر میشه از قبل و با به خداوند و پرپردگار و آفریدگارش بیشتر میشه لذت میبره از ایمانش از دینش از این باب هست که امثال این کتاب کتاب های مفیدی هست در این باب که ما روش مروری داشته باشیم الله توفیق داد 8 ساعت تقریبا کمان بیش با این کتاب باشیم با سخنان این مؤلف و دکتر صالح سندی و دیگه انشاءالله در دو جلسه یا یک جلسه الله توفیقمون بده ما با وقیف کتاب رو خواهیم خون و این کتاب رو به اتمام خواهیم رس خواهیم رس اما جلسه نهم نهممون کسفی 60 شروع میشه آغاز میشه مهمترین وسایلی که تاثیر گذار بر جوانان ما در اون غضب فرهنگی در اون جنگ و در اون نبرد فرهنگی که با ما دارن خصوصا غربی ها با اون الحادشون جنگ و ستیزی که اونها دارن با ما اینجا معلف اینجا شروع میکنه میگه یا طب قواسیتا هومن اخطار یعنی خطرناک ترین حربهای دشمنان با ما مؤمنین و با ما مسلمانان بزرگترین حربهاشون بزرگترین و خطرناک ترین وسایلشون پی غزو عقول شباب و ناشا خصوصا در نبرد و در حدم ایمانیات جوانان و نوجوانان ما اون جنگی که دارن با دین و ایمان ما خصوصا گفتم جوانان و نوجوانان ما برای اینکه دین ایمان رو ازشون بگیرن آداب و مرام ازشون بگیرن افت و پاکدامنی ازشون بگیرن ممكن أني بسأله الشبكة العالمية الإنترنت أبليش إنترنته يعني شبكاته عن كابوتي بيشو مجان شبكاته كبينو من الليه سدوي ما عز إنجار راحت دنيا انتقال بينهم يمكن ولا سوا حاجة على انتشار هذه الوسيلة وما تنطوي عليه من مخاطر نميخ ميجي إنجار خطورات هاي إنترنته إنجاز هاي و شبکه‌هایی که موجود داره و دار بر گرفته رو می‌خوام، بخوام اینجا بررسی بکنم و بخوام اینجا بازگو بکنم. هدف این نیست که بگم چی داره می‌گذره در فضای مجازی، چی داره می‌گذره در این فضای اینترنت. مهم پیشگیری، مهم درمانه. فاشکالو انتقال الکترونیال حديث، اعلام الجديد، آزاد حفظ فضاي واسع عصيا على المطاب متابعت و انواع وسایل و التواصل که وجود داره رسانه‌ها و خصوص ارتباطات جمعی مختلف از داسا و با تلگرام و اینستاگرام و تیک تک و یوتیوب و انواع وسایل شما دارید وسایل در این شبکه اینترنتی وجود داره که فضای گسترده‌ای را ایجاد کرده به دور از رقابت به دور از کنترل و پیگیری اصن نمیشه چگونه می‌خوای از چه درینو می‌خوای ببندی درهای مختلفی به جوانان شده و اون ملحدین از هر دری وارد میشن و سو استفاده میکنن و میان شبه میکنن و توضیفها في نشر الحد له وسائل و منها استخدام این شبکه اینترنتی برای ترویج فکر الحادی میگه گونه گونه وسایل زیادی داره از جمله میگه اولا شبکه تو تواصل الاجتماعی اون شبکه های ارتباط دست جمعی رسانه هایی که ارتباطات جمعی رو برقرار گروه ها و مجموعه ها توش هستن از واتساپ گرفته تلگرام و اینستاگرام گرفته و دیگر و اینجا مثال توییتر و فیسبوک می‌زنن که در ایران ما کمتر استفاده میشه ولی خب کشور عربی بیشتر بهش آلوده هستن به توییتر و خصوصا فیسبوک و الواقع يفصح بجلاء على انه اليوم موجه موجه ثقافي بالغ التاثير میگه خب واقع امروزیمون می‌بینیم که روشنه واضحه بر تأثیر گذاری شبکه های اجتماعی بر جوانان ما بر فکر اونها بر حتی فرهنگ ما تأثیر گذار بوده در نوع پوشش ما لباس ما همش تأثیر, تأثیر،, تأثیر گذار بوده مثلا بلفرز خب تو ایران بیش ملیت های مختلفی داریم مثلا چه بلوچش، چه کردش چه عربش هر کدوم لباس خاص خودشون داشتن مثلا بلوچه اگر یک مثلا یکی از جوانهاش رو مثلا لباس قمیش شواری به تن کرد مثلا بهش میگفتن این غجری شده یا مثلا به یک نحوی تحقیرش میکردن تعصب قومیت خودشون داشتن یک مرامی، یک ادبی یک افتخاری و عزتی برای خودشون، نجاد خودشون داشتن ولی خب اون تهاجم فرهنگی که ما شدیم ادب مرام و اون... خانواده و اون قوم و عشیره همه اینها رو لگد, لگد مال کرد مال یعنی شخص دیگه اصلا توجهی نداره که تو جامعه چه نگاهی میشه چون زمیرش چون اون از اون وجدانش را از بین بردن دیگه دوچار از اون وجدان نمیشه دیگه اصلا برای خودش زمیری نداره حالا بذار مردم بگن بذار هر حرفی میخوام بزنن اصلا براش جامعهش مهم نیست پدر و مادرش قوم و قبیلش. اصلا براش مهم نیست ارزش نیست در صورتی که نه اسلام اومده تشویق کرده که انسان اصل و نسبش رو بدونه، خانواده‌اش رو بدونه. اربا انسابکم تصلوا ارحامکم سلی رحم تشویق کرده و تتقوا الله الذي تسالون به والارحام. خب اینا همه تشویق‌های شریعت بر یعنی دین ما هست بر اینکه این قانون این محکم بشه، انسان تک و تنها نمونه. که توسط گرگان جامعه همون سید میشه نه یک قوم و عشیری هست که ازش, ازش حمایت بکنن اگر در بدیهی، اگر در سختی، اگر در مشقت، اگر در مرزی افتاد کسی باشه دستش میگیره دیگه پدر و مادر تحویل خانه سالمندان نده پدر و مادر حرف منو داره درک میکنه ولی تو که جوانی نمیتونی درک بکنی اون لحظه ای که آرزو داره سر به بالش می‌ذاره، سر می‌ذاره، یه کسی نازش رو بکشه، نازش رو بخوره بیاد بگه، پدر، عزیزم، دلم، همین کلماتی که نصار تو می‌کرد، تو بچه بودی، دست به سرت می‌کرد، با کلی آرز تو رو بزرگ کرد اون لحظات رو فراموش کردی وقتی که به تو می‌گفت قلبم کجایی زنگ بهت می‌زد مادرت موسیه هاش که نصرت میکرد و فراموش کردی الان بی سرپناهش کردی تعویل خانه سالمندان داد این عاقبت الحاده مسلمان نیاز به خانه الحاد نداره این خانه سالمندان نداره <تصفيق> واقعا همینه یعنی بی دینیه اینه درکی مسلمان نیاز داره مسلمان اصلا کل شهر توصیه به پدر مادر از قرآنش بگیر اول حق خدا بعد میاد حق والدین و بالوالدین احسانه وقفل لهم اجنح از من الرحمن بالا و فرش کن اطاعت کن از ولتا قل لهم اف به حق نداری پدر مادت اف بگید دینه کجاش بده شما به من بگید ولی درک نمیکشه چرا درک نمیکشه؟ چون آلوده شدیم آلوده شدیم با و آلوده و تعمه شدیم به دست غرب اونطوری که میخوان روی ما تأثیر میذارن. کجا ایران ما خانه سالمندان وجود داشت؟ خانه سالمندان از کجا آورد؟ این فرهنگ از کجا آمد؟ غربی ها آوردن خوبه؟ برید به پدر مادرتون بگید بگید به پدر مادرتون خانه سالمندان خوبه تحویلتون بدین برید اونجا؟ کدام یک پدر مادری راضی میشه که بره تو خانه سالمندان بشنه چهار تا مریض دوره برای خودش میبینه چهار تا افسرده و روانی که کسی نمیگیره. چرا انسان افسرده میشه افسردگی از کجا آمده از کجا میاد افسردگی جز اینه که از بیدینی و لادینی میاد از بی خدایی میاد بی سرپناهی میاد افسرده ای آلپرازروم میخوری دنبال هشیش و تریاکی دنبال شیشه ای دنبال سیگار و مشروبی خود تو بی دیوانگی و جنون بزنی میخوای از خودت بی خود بشی چون دنبال بی خودی بودی چون بی خدا بودی عاقبت بی خداییه آقابت بی خداییه رنج درده والله درد رنج بی دینی. کجاش خوشیه کجاش لذته والله لذت در ایمانه لذت و مزه در ایمانه وقتی که تو با ایمان زندگی بکنی و با ایمان تعابون با دوربر خودت داشته باشی خسرم پدر و مادر که الان بحثش درآمد. پدرت ازت لذت ببره مادرت ازت لذت ببره که سراغش میگیری کنارش میشینی دست پاشو مالش میدی پهاشو میگیری مالش میدی اللهی پدر و مادر تو دلش احساس خود سندی میکنه و براش دعای خیر میکنه پسر خوبی داره تحویل داده تحویل جامعه داده این لذته یا اون لذته خانه سالمندان تشخیص تو چی میگه کدوم, کدوم واقعیت با کدوم واقعیتو میخوای بپذیری تلخ قشیرینش خنده پدر مادرت میخوای ببینی یا غم و افسردگیش دلتنگیش وواقع یف بجلاء، على انهایوم مجه موجه بالا تعتیه ف من الناس من تو ساعت طبال اما محوم مین جاذبتونلح چقدر جذابه داری این اینترنت اصلا دیگه طرف نشسته سرش تو گوشیتون مبایل ساعتها ساعت ها میشننه یا بازیداری میکنه و یا اینکه داره با این اون حرف میزنه. وقتش داره تلف میکنه. نه جسمش حقش رو داره میده از اون ورزش از اون کار کشیدن از اون بس برای حداقل دق... جسم حداقل برای برای امرار معاشش حاضر نیست کار بکنه اصلا به کار نمیده میخواد راحت بشینه دوربینی بزاره جلو خودش حالا نشسته تو اینترنت دنبال کاسبی میگرده اصلا تحرک نداره اصلا بازاریایی ولن نیست جامعه ای که اینترنت وجود آورده نمیخوام آسیب ها رو بررسی بکنیم آسیب های اینترنت ولی کن بحث ما الحاد چگونه الحاد على سريق الانترنت ورد مشه. يكوشون قفتين. فاسؤالي اجتماعي والملاحدة ينفذون من خلال هذا المنفذ. كما يلحظ المتابع بتخطيط ونشاط وتركيز. متمركز ونشاط. هز درعين شابكهوية. وشابكهوية رسانهوة وارتبوتوت الدعس جاميه. سخت. دران كورمي كونان ملحدين. مع انتهاج الاسلوب الصريحة واضح از سریحی تارتن گاهی سریح واضح روشن میان فکرشون تارید میدن و رمزی تارتن اخره و گاهی هم مرموزانه میان فیان قلون نظریاته مستقیمه مغلفتن به القول میان اون فکر آلوده خودشون نادرست اشتباهشون را با پوشیشی زرین براق قشنگ با یک پوشیشی خیلی قشنگ میان تحویل ما میدن مجد... مثلا یک از راههاشون یکی از راههاشون اینه که اون فکرشون فکر الهادیشون رو قشنگ جلوه بدن آیومجدون اساطين الالحاد و نتاجهم الفکری اینکه میان مثلا از بزرگان فلسفهشون ملحدشون میان به بزرگی یاد میکنن با شکوه یاد میکنن اینها فرهیخته بودن دانشمند بودن این علمی که تولید کردن این کتاب هایی که اینا نوشتن و الی آخر او یا بثون شبهه عابره ماکرن وکن داره میگه چه هایی ملحدین دارن برای رسیدن به ما چه راهی طی میکنن برای اینکه ما را اسیر خودشون بکنن یا اینکه شبه را میدن قشنگ تحویل ما یا اینکه بزرگان خودشون را قشنگ جلب میدن یا اینکه شبهه های خودشون را با نیرنگی تمام با مکر میان تحویل ما میدن با یک یعنی طرز القایی که اون جوان ما ندونه از کجا خورده یعنی یک طوری اون شبه را وارد میکنن که ندونه این چیه شبه هست یا نه مثلا هم بحث گذشته که داشتیم صخره خدا میتونه این سخره بزرگی را بیافرینه بعد نتونه بلندش بکنه ظاهرش سآله علی مکر این رنگه برای اینکه الله را عاجز و ناتوان جلوه بدن او یستهزئون با به احکام شرعی میان تمسخر میکنن به احکام شریعت احکام دین چه, حجابش چه بحث تعدد و چند همسریش و چه بحث بردگی و بردهداریش و و الی آخر برای اینکه ارزش دین رو پایین بیارن و دین رو کوچک بشمارن در چشم و زیر چشم ما ناچیز و بیهوده جلوش بدن آویو شک که نفی مسلمات دینیه در امور مسلمی دینی ما تشکیق وارد میکنن آه چرا تو پنج بده نماز بکنی؟ ابن سینا گفته خداپرستی و خداشناسی به نماز نیست به یاد خداست من گیتار رو میدارم تینگ تینگ تینگ خدا خدا خدا میکنم خدا خدا میکنم این عبادت منه نیایش منه خدا را یاد کردم 124 هزار پیغمبر اومد گفت که هر طور دلت خاص خدا را بپرست یا گفت بهت که نماز را این توری بخون در این وعده بخون با این رکوع و با این سجده و با این ذکر و با این نیایش حالا به جاش میاده در بحث مولانا و بحث من قصه موسی و شبان. چونه این قصه های دروغی مثلا تعمه میشن برای ما الله مره همینطوری که خلقت نکرده که رها بکنه هر طور دل و خدا را یاد کنی نه پیغمبر و پیغمبرشو فرستاد و پیغمبران دیگر از موسا و عیسا و تمام پیغمبران الله فرستاد که راه منش رسیدن به الله و سراط مستقیم آنشون اومدن سراط و راه مستقیم یکی و انه ها در مستقیم من فتبعو و لا تتبعو السبل گوش ندید به اون خرف زده اون دکتر عبد کریم سروش مقاله بی به اسم سرات های مستقیم برای نقص کردن فرمودی الله جل و علی و انه هده سراتی مستقیمن حرف خودش هم نیسته حرف سوفیان ما قبل خودش از اون ملحدین سابق راه های رسیدن به خدا زیاده بعد فیلم که دیدید دیگه فیلم مارمولک رو دیدید چطور از طریق فیلم میان مثلا اون تهوری تصوف را دیکته میکنن به ما رو تلقیم راه‌های راه های رسیدن به خدا زیاده از دیوار مردم می رفت بالا این مارمولکه این دوزه بعد لباس خوندی هم پوشیده بود و الى آخر دیدید دیگه من فقط چند قسمتی فقط دیدم از این فیلم مارمولن مود بود یک دوران یا ممنوع بود بعد دواره چون توهین به اهل الک توش بود و به اما و پوشان و اما و پوشان و اینا ولیکن خب واقعیت تلخی هست که که از این روزنه فلاصفه و, و فلسفه وارد شدن برای بیدین کردن جامعه برای اینکه آقا برای گناهان خودشو مجوز. بسازن برای دزدی خودشون برای زنای خودشون برای اختلاس خودشون در پوشی بذارن بگن که آقا مقصمون خوب بوده مقص بدی نداشتیم های رسیدن به خدا زیاده مهم قصه مهم دله دلت پاک باشه دختر هجاب بردار دلش پاک باشه دوست داره آقا اینطوری که باشه دوست داره موسیقی خوش بوده دوست داره مشروب بنوشه دوست داره پدر مادرش کتک بزنه دوست داره آقا دزدی بکنه دوست داره قصش خیره میخواد مسجد بساطه دوزی میکنه. حرف کن. این عبدالکریمی سروش همیه اون دکتره اگر تو دانشگاه درس کنده ما هم دکترهیم تو دانشگاه درس کندیم. سواد داره ما هم سواد داریم. ما که با بی سوادی حرف نمیزنیم. حرفایی که این بنده خدا خونده ما هم این حرفا داریم تو کتاب ها میخونیم یک کتاب ده تا کتاب نیست کتاب ها ما داریم میخونیم ما هم اهل مطالعه این تحقیقیم میخونیم همینطوری حتی حرفای اونا میخونیم ولی که تفاوت داره حتی در معالش اگر ما بخوام بنگریم آخر آقبت فکر عبدال کریم سلوش رو زرما در نظر بگیرید سرات های مستقیم یعنی صراط های مستقیم هر راهی تو را به صراط مستقیم میرسونه به خدا میرسونه دوزی هم تو را میتونه به خدا برسونه این حرفش دیگه حالا غیر از حرف گیرش دیگرش که نقض نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و میکنه تو اینترنت هست نقض پیغمبران الهی میکنه با با و نبوتشون و نقض قرآن به اینکه کلام وحی الهیه سخن الله را نقض میکنه قرآن به عنوان که کلام سخن الهیه اینا همه کفریات و الحاد و آقای سروش ما باید زیرت باشیم ما باید دانا باشیم ما باید بدونیم چی به خورده مداد میشه الله در قرآن میگه وان هاذا هذا یکیه در لغت عرب صراط مستقیما این یک راه مستقیما یعنی راه مستقیما قران و سنت پیغمبر اون چیزی که به بهتون پیغمبر از طرف من گفته وان هاذا صراط مستقیما فتبعوا بکنید چرا باید میگه عطیع الله و عطیع الرسول؟ یعنی چی؟ یعنی ها در صراطی مستقیمه عطیع الله و عطیع الرسول ولی تتبع السوول دیگه راهی دیگه نرید این گفته فلانی گفته به و بیسار این حرفا رو زده الله و رسولش چی به تکلیف کردن تکلیف دادن از تو چی خواستن نه فلانی خواست در دین و نه در دنیا ما بحث انتما علمو به امور دنیا که رسول الله میگه شما در امور دنیا خودتون بهتر میدونید بحث ما در امور دنیا نیست بحث ما کجاست در دینه خب پس در مسلمات دینیمون شک وارد مثل مثلا عبدکریم سروش میگفتیم بحث وحی و بحث پیغمبری روزی سوال میاره شک داره وارد میکنه دیگه بعد میاد میگه آقا شما چرا اینطور با خشونت با تندی برخورد میکنید خب طرف اومده اسلام را از من بگیره بعد بیام نگاش بکنم بعد حرفاشو گوش بدم بعد حرفاشو با ذرق و برقم به دیگران بگم که بیان تحت تاثیرش قرار گیرن طرف اومده آقا نیم ساعت وقت منو گرفته که آقا تو چرا توهین کردی بیکریم عبدکریم سروش آقا طرف به دین من داره توهین میکنه به پیغمبر منو به خدای من داره توهین میکنه بعد الان من جوابش دارم میدم چون جوابش دارم علمی میدم با قرآن دارم جوابش میدم من شدم بعد بدی این طرف را نمی بینی این بنده خدا نمی بینی الحاد و زندقش او یضعفون به اهل العلم از دو جمله کارهایی که میکنن حالا این عبدال کریم سروش اگر اومده به جنگ با دین ما و پیغمبر ما خب این ملحدین تنهاد به اینجا اکتفا نمیکنن. میان به جنگ با اهل علم ما با جنگ با اهل ما اون اعتماد ما را به اهل علم کم میکنه اعتماد ما به اهل علم کم میکنه اینگاه که اهل علم هیچ حدومتی خوصا حالا اینجا ملحدین این کار میکنن ولی متاسفانه ما همین این کار رو از کتاب معاصرین که در زمینه الحاد نوشتن بازم هم این کار رو میکنن مثلا من اینجا مجموعه از تعلیفات تقریبا 7-10 تا یکی نیست یعنی دوربر خودم جمع کرده یک مؤسسه ای هست مؤسسه تکوین اینقدر خب، الان بیشترش که من مطالعه کردم، الان مؤلفین و مختلفش که داره، الان عجیری و نمیدم سامی عامری و اینا بین جوان ها زیاد داره رواج پیدا میکنه. کارشون از یه طرفش علمی هست جمع بری کردن گفته های فلاسفه و ملحدین و زندگی ها، ولی که یک اشتباهی که در زم مرتکم میشن چیه؟ میان شعن اهل امروز پایین میارم میگن علمان نیمدن خدمت بکنن، نیمدن رد ملحدین بدن. اعتماد ما مذهبی علمای ما کم میکنه در صورتی که از همون ابتدای زمان صحابه بعد از اینکه عبدالله بن صبه یهودی میاد از همون ابتدا ها رو بالا زدن اهل علم، کتاب نوشتن، تألیف کردن، رد دادن خود عبدالله بن عمر رضی الله عنه رو شده مسلم داریم معبد جوهنی چی گفت در عراق ابتدای الحادثه انداق بود دیگه بی دینی ولادینی بود اومد تن وارد کرد در قذا و قدر. خب جلبیش چی داد عبدالله الله بن عمر میگه نه اینکه یکی از شبهات ملحدین بحث نفی قضا و قدر الهیه که اینجا مطرح شد خب اولی کسی که سینه سفر کرد برای این ملحدینی که مجوس بودن و زرتوش بودن اومدن ادعای اسلام کردن و بعد اون از شبهات اون الحادشون رو به مسلمانان تزریق بکنن میگه بود که سینه سفر کرد عبدالله الله بن عمر اینا نبراعت کرد از این طرز فکر این طرز فکر خلاف قرآن و سنت. بعد استناد میکنه به حدیثی که از پدرش شنیده في تعريف الإيمان يقول أن تؤمن بالقدر خير و شر إيمان لا يمكن أن يكون بقضاء وقدر خير و شر قبول داشت باشي بابار داشت باشي بمقدرات إلهي إلهي إيمان داشت باشي بأتماد نشيه النسبة بعلم آمون علم آمون ورسين فيغمبراناً حموتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرماً إن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورث العلم علمامون ارسی به جا گذاشتن و عرصشون چیه؟ عرصشون عرصش ارسش که به جا گذاشتن علم و علمامون از اون عرصه گرفتن. پس اعتمادمون از زست ندیم نسبت به علمامون. خیلی کار کردن علمامون. چه در زمینی عقیده از همون ابتدا کتاب هایی که در داده بشه. خودت شما برید کتاب بخاری رو بخونید، مسلم رو بخونید. و کتاب هایی دیگر از صحیحش، سنن عربه، شما کتاب ایمان دارید کتاب توحید دارید در صحیح بخاری صحیح مسلم ابتدا کتاب ایمان و وحی و اینا دارید این چی؟ چیز تحصيل مباحثات اعتقادی و ترسیخش در دل ها او اصلون الجمله والمفاهیم الممهده للممهده لافکرهم یكسری جمله ها زیاد تکرارش میکنه یا مفاهیمی که پیش زمینه باشه برای القای فکرشون یک سری اصولی قواعدی برای خودشون دارن یک سری حرفا سخنها, سخنها شیرینه در قالب مثلا بحث همین راه های رسیدن به خدا در ظاهر حرف درستیه چون مهم رسیدن به خداست در ظاهر یه چیزی شیرینیه تو میخوای به خدا برسی ولی که در باطنشیه در باطنشیه که در در برای هر کار اشتباه نادرست تو مجاوز بیدی نحوه التذمری من الوصایت على العقول و من هیمنت السواتر الحدیدیت علیها مثلا یکی از چیزا که زیاد مثلا پیرامونیش حرف میزنن میگه که كا اگر کسی اومد عقلتو خردتو راستو بگیره با خش گرفتن با بگن با پندو اندرز دادن اومد الله با قلصان بحث اینجا پنده التذمر من الوصایت على العقول نظر عقل تو مثلا کسی براش تصمیم بگیره هدفشون اینه میگه که از باب نصیحت وارد میشن مستقل باش در عقل خودت عقل تو در از قرآن بگیر نه از پیغمبری بگیر مستقل باش در عقل خودت و از این که کسی بخواد بیاد با پوشیش آهنی بخواد بیاد عقل تو رو بر عقل تو چیره بشه جلوش رو بگیر نظر کسی رو محدود بکنه به عقل خود خرمت بده بذار عقلت آزاداندیش باشه نوندیش باشه والله نوندیشی و آزاداندیشی نیست بی بندوباری بی اساسی بی قید بودن مثل خیابونی که هیچ چراغ توش نیست هیچ علام، علامت و نشانی توش نیست مثل ماشینی که تو شب حرکت بکنه و اون تو خیابون هیچ علامتی نیست و چراغ نداره اون ماشین این بی قید و اساس بودنه این آزادیه قرار بر این باشه که همه با دوست باشن همه باید قاتل باشن چون آزاد دیگه هر کسی خودش حکم بی که چی باشه و چگونه باشه کسی نیاد باشه حد و مرزی بذاره دین اومده حد و مرزها را گذاشته حرمتها گذاشته برای که در ظلم و ستم نیفتی والدعوة إلى الانفتاح والانطلاق غير المقيد بقيود. هكذا خب هرفاشون بعسهم يفتحوا أزاد عندي شيء، أزاد فكري، أزاد زنجي كذا، أزادية حجاب، أزادية نبيذ. خب إنسان أزاد باشه دعوته شو يعني؟ كم ما بزر بروز بشر. هابديته أشي. بدون هيش كيلو باندي. ونحو هذه التأسيلات القادمة في الإسلام، هذه تأسيلات وهذه قواعد كأسم نقص من الإسلام المزينة للانسلاخ منه. که میشه ما را، اسلام ما را از ما بگیرن. سبب میشه که ما بدین میشیم. هدف شدیم. خب، پس این تحصیق داری اینها و راه های تحصیق شد. از طریق انترنت و شمکه های اجتماعی. خوصا وسایل ارتباطی دست جمعی. خب، از جمله راه ثانیا مواقع تبادل و نشر مقاطع مرئی و شر یوتیوب و لعلا مرتادی ها اکثر مستخدمین للشبکه حجم راه های نشر الهات که امروزه زیاد زي ازش استفاده میشه شبکه‌هایی مثل یوتیوب هست که کلیپ‌ها درش نشر میشه مثل یوتیوب که بیشتر کسانی که جویای فیلمند دنبال فیلم می‌گردن بیشتر کسانی هستن که از اینترنت هم استفاده میکنن یعنی استفاده و بهره یه مثل که ما گذاشتی و سریق یوتیوبه. بیشتر این ای که استفاده میشه در نقل صدا و تصویر. و هر کسی که دنبال یک مطلبیه از این رسانه استفاده میکنه. یک رسانه آمریکایی به تمام معنا برای از بین بردن عرضش ها خصوصاً های اخلاقی. هدف هاشون اینه دیگه خانواده ها خانو رو هدف قرار میدن ارزش اخلاقی را هدف قرار میدن تا اینکه اون وجدان و اون ضمير و اون شخصیت و اون عفت و اون مرام مرامو اینا همه از ما بگیره. فان المااهده یبثن لیل و نهار المقاطع التي تؤصل للالحاد او تقرب منه شبروزرا ملحدین کار میکنن تا اینکه کلیپ ها و اون ماده های علمی شون در این شبکه ارائه بدن و ما رو به اون الحاد یا نزدیک بکنن یا الحاد بخورده ما بدن ومن مكرهم انهم يجعلون لها او کلمات دلالیه از مکرشون این رنگشون اینه که یک کلماتی از انوانهای استفاده میکنن مشتهره یکتر بحث شباب عنها یعنی اون چیزی که جوان ها خیلی زیاد دنبالشن از یک کلمات هشتک استفاده میکنن که بروزه یعنی به معروف زبان زده عام خاصه میان از همون واژه استفاده میکنن تو دنبال یه چیز دیگه میگردی یه چیز دیگه بخردت میرن نحو مبارات اهداف گل های مثلا پرسپولیس نمی بازی دربی بازی فلان بازی ایران و تو دنبال بازی داری میگردی ولی دارد بیت آدرس فحشا و منکر و خیابان های که مواد فروش ها هستن و نمیدونم کجا مواد فروش هستن بازی میکزیک رو زدی خیابون ها کچه خیابون های میکزیک نشونه تو دید کجا مثلا هنور فرق آدرس مواد فروش است؟ او اسما ممثلین و فنانین یا مثلا هشتگ به اسم هنر پیشه به اسم بازیگر و بازیکن ها و افلام و مسلسلات و ما ایلی هم فیلمی نمیدونم حتی های کارتون انواع هشتگ ها استفاده میکنم برای رساندن اون فکرشون لعلم هم انهم یتتبعون هده نوع من موقعات چون مثلا برفر من جویه بازی هستم مثلا بازی فوتبال بازی تیم فلانی فرصت استفاده میکنم غنیمت بجمورن الحاده ولیکن عنوان بازی فوتباله فا اذا لاحت امام هم تلک المرئیات المسمومه دفعهم حب الاستقلاع لما شاهده من بالفرد دارم میزنم بازی پرسپولیس بعد پاینش مثلا خب یک کلیپ برام گذاشتن کنشکاف میشن خب یک کلیپ مثلا پیرس کی بوده از کجا آمده و چرا اسمش گذاشتن پرسپولیس در قالب پیرس بخوردم چی میدن زرتوشتیت، آتش پرسی، کردار نیک و پندار نیکو نمیدنم اون کوروش کبیه رو. خب پس باید معاظب باشیم. فتعتل و بیه قلوب هم. وقتی که من یک کلیپی در یوتیوب میبینم وقت کنشگاه اون گل میکنه میرم نگاه میکنم ولی تحت تاثیر اون شبهه واقعی میشم. خب سومیش. چیزی که در فضای مجازی میگذره گذره ثالثا المنتدیت العم انجمن ها خصوصا تالار های گفتگو اتاقای فکر مجازی خوصا یک زمان رس بود مثلا تو پالتاک مثلا می نشستن گروه ها در بحث الحاد و اینا مثلا اتاق بود می اومدن جوان ها مثلا با شور شوق و حماسه مثلا وارد این گروه ها و انجمن ها می شدن و اونجا بود که آغشته به آلوده به فکر الحادی می شدن فالملاحده توی مدون شباقهم ایلی ها اونجا دیگه تورو پهم کنه برای سیدشون لازی یم المنتدیات و ذات الحضور که بخصن اون که طلره و های گفتگو که حضور و اون طرف داراش سیادن فیضرگون عصوری حجر یعنی دوتا گنجشگو با یه سنگ می زند کما یقال بثو الشبه یعنی در اونجا میان شبهات خودشون رو شوفه شو بها میکنن یعنی شبهات خودشون اونجا مطرح میکنن و اقتناص و من خلال التفرس ثم التانيث ثم تشکیک ثم تأسیس این راها از قدیم بوده خصوصا ملحدین قدیم برای اینکه سید سید بکنن فریسه خودشون اون شکار خودشون سید بکنن خب اول با زیرکی وارد میشدن تعمه خودشون اون تعمه را به اون دام خودشون نزدیک می برای اینکه به دامش بندازن برای اینکه تو تلش بندازن سپس حالا با فریب تومت تنیز با مهربانی یا با اون جوی که فضایی که ایجاد کردن سیدش می کردن. به طرف خودشون می سپس ذرش شک, شک و تردید ایجاد می و سپس اون فکری که میخواستن بهش تذریق میکردن فاذا فا وجدوا في المشاركين من الذكور والاناث من يتوسمون فی انه سيسال سيسال سيسالدس قيادته لهم اگر می دیدن جوونشون زن مردش پی میبردن که آمادگیشو داره بر اينكه پذیرایی اون رو داره خب چیکار میکرده میمدن روش متمرکز این نخبه هست این میتونه روش تاثیر آمادگیش رو داره خب كان يرف فيه ميلا الى التحرر والانفتاح مثلا خصوصا با بيبينا دنبال آزادیشه دنبال خوشیشه او نفور من العادات یا که از عادات و جامعه اش داره بدش میاد او حنق على اهل الحسبه یا مثلا اهل دین بدش میاد فانهم يحرصون على اي يعلق بعبارات المدح على اي مشارکت لهم مثلا این انگیزه رو درش میبینن از دین بدش میادی از عادات اتقالی در رسوم قوم خودش سعی میکنن که مثلا وارد یک مجموعهش بکنن و بعد کف بزنن و تشویقش بکنن هر گونه مثلا حرفی و تو حرف درسته تو خوب داری حرف میزنی بالو پر بهش بدن و به تمد تو تومد و بینه و بین و, و, و جسور و العلاقه خب این ارتباط بین اونها برگزار میشه بین اون ملحدین و بین اون تعمهاش بین اون شکارش اون جوان اون جوان اون از زن مردش ثم تطو... تتطور و شیعا فشیعا فس این ارتباط هی بزرگتر و بیشتر میشه فمن التواصل عبر البرید الخاص الى المحاده تل مواشرات مثلا بعد از اینکه با هم دیگه ارتباط کردن. ايميل هم ديگه رو بعد از ايميل مستقيما باهم ديگه هرف بيزنن ثم إلى ادخاله في مجموعات بريدية فتصله المقالات والكتب سبس كتابها ها و مقالات براش مفرسن كت... خصوصاً على سريق ايميل و ووص وصلات المواقع والمدونات لينك بش ميدان لينك اين گروه لينك و مجموعه اين سايت التي لا يلزم ان تكون صريحة المحتوى في ابتداء الام لازم ام نسك ابتداء مسير واضح و باشه وهكذا إذا تطور الأمر حتى يصبح صيدا سهلا في أيديهم. إن شينين بواش. بيش ميران تون كسيد راحتين بواش بداسشون فيسقطونه في المستنقع الآسن. تأكل منجلاب جندية وردشون كنا الحاد. راحتين توري تومشون ورداي منجلاب ميكونا. رابعة وهو اللب والأهم. شيء زي كمهمة. مغز قازيهاز. وهو الذي يريدون أن يوصل الشباب إليه. هدفه إيش؟ که میخوان جوانا رو باون بکشونن المدونات والمواقع للحادی آخرش با این همه شبکه ها همش میخوان به شبکه هایی به اون سایت هایی که درش نشر الحاد میدن برسونه و هی سم زعاف این هم سمه کشنده هست الحاد و هونه ادق و الخطر زنگ خطر فمن خلال بحثي يسير يسير اطلعت على عدد كبير من هذه المواقع والمدونات الالحادية التي تتم دعاية لها من خلال الوسائل السابقة فهون هنا أدقنا قوس الخطر إن جمعي زنجب خطر ميزنا خصوصاً ماني كبيجدي دام رفتم السويتارو براسيكا دام خصوصاً فعليات هيك ملحدين داراً وترجيم يكونان وتعابات بسوني هذا شو ميدن خب چی چیز بگه درشت دیدم میگه و به اطلالت سریعا على هذه المدونت و بعد از مرور و مراجعه بر این سایت ها چی نین دیدم میگه اینی اجزم انهو من ولج دهالیزها من ضعیفی تأصیل شرعی من الشباب و الفتیات و لعله اکثر هم کذالک چیزی که دیدم خلصا اون جوان که پیش زمینه دینی ندارن هیچ تا... تأثیل علمی دینی ندارن وقتی که وارد این میشه وارد این منزل میخواد بشه بالاخره از یک مرورگاهی باید رد بشه این دهلیز به ابتدای منزل گفته میشه که وارد منزل انسان میشه خب و تعرض لما هو مبتوث فيها من الشبه فلن یخرجه که ما دخل وقتی کسی ساده هست وقتی کسی ساده هست وارد این کسی آه... که ساده هست اوانی که وارد این مجموعه ها میشه خمسلمان هم وقتی که پیش زمینه نداشته باشه تحت هسی قرار میگیره و سیل میشه و المعصوم عصم الله کسی یعنی و... آلوده نمیشه که الله سترش کرده باشه وگر نه انسان را حد در این شبکه ها سیت نمیشه، لان القوم لدیهم اس اسالیب متقننه و نام راهای ماکر ما لو بیم ماکر نیا بیم راهای مختلفی دارن راهای خصوصاً بررسی شده یعنی هم دام دقیق, دقیق و با دقت. راها را بررسی کردن که چگونه بتونن جوان را تحت قرار بدن یعنی کلی دانشگاه ها زدن کلی اتاق فکر دارن برای این که بتونن جوانه ما را سید بکنن و شبه و تلبیسات تنش و اغفارها في قلوب الاغرار ناقنای خودشونو با اون شبه ها فرو میکنن تو دل جوانای ما بالاقناع عاطفی جایی بوات فيبرد مشان وجوههم مغالطات عقلية جو مغالطة عنده زي وإثارة الشبهة الدقيقة شبهة بس في شبه سورة آخرة قفتها وقلب الحقائق جو حقائق روبرون يم يكونون والاستهزاء جو قفتين بتماسكوا بدين والقصص والأشعار بقصوا الشعر في سلسلة طويلة من المكر الكبار أي بوا نيرنجوي مختلفة دارا مريه براية انهراف جوانا يما خب بس إن بسیله که به دست اونهاس اینترنت و رسانه که از طریق اون نشر الهات میدن اما وسیله دوم روایات قصه ها داستان ها و مقصود روایات المنحرفه تعقدی خاص روایاتی که اعتقادی هست و منحرفه که گفتم که میار قصه موسی و شباب فهی معول هدم العقیده این تکیه‌گاه که بهش اعتماد میکنن در از بین بردن عقیده قصه‌ی موسی و شوان چیه؟ پیغمبری از پیغمبر الهی اومده به مردم دعوت بده به سوی خدا، راه رسیدن به خدا رو نشون بده. بعد خب این پیغمبر موسا میاد یک چوپانی، شبانی رو بینه که میاد وصف خدا رو میکنه کجا چه جاره کرد، وجودم موحد شون فلان کنم. بعد موسی به اون شبان میگه نه این راه پرستش خدا نیست. خدا میاد ملامت میکنه موسا که تو چیکار به اون شبان داری؟ بذار هر تا دوستاره خدا رو بپرسه. این رو بعد دروغ اساسش صوفی‌ها این قصه را چرا گفتن؟ به خاطر این که بگن آه راه رسیدن به خدا زیاده. هرطوری می‌خوای خدا را ببرم. اساس این قصه باطل و نادرسه و مرکب دلول مسلله الالحاد این مرکبی این کشتی که ساحلش الحاده تو به اونجا میرسونه و ذلک ان رواات قصص این روایت قصه است ولی که قصه شیرینی که به دل وجاسبه خصوصا اون کسی که دنبال گریز از دینه. و نفوس مجبوله على حب از اینجا تری هم ما پایبندی و دینداری رو دوست نداریم چون دست پا ممیبنده از یه طرفی هم قصه رو هم دوست داریم وقتی قصه بیاد اون نفس اماره ام رو تشویق بکنه دیگه چی بیشتر از اینج بهتر از این لا سیما وان کثیرا منها یضرب علی وتر خیلی از اینها احساساتی وارد میشن جایی از باب عشق و عشق و اثرات غریزه جایی شهوت از باب شهوت چقدر از شاعرها دارید شما کتاب شعرشون وصف زن زنو نمیدونم بس به سینه هاشو از اون جای بیناموسی جای بی افتی جای بی غیراتی اصلا وا اینا توی اشعارشون هست برای چیه به نظر شما برای اینکه افت و, و دین و دینداری رو از ما بگیرن و هذا نوع من ما و لی كثير من افتات خسن دختران این, در این بابو خیلی دوست دارن خسن وقتی که در مدح بیفته طبیعت انسان نفسری شده انسان مدح و, ستایش و دوست داره به ما دختر مثلا از موهاش رو به بیرون میاد، موهاش رو بیرون میکنه، حجابشو رو برمیداره بعد عبروهاش رو نمیدونم چشاش درست میکنه اصلا انگار نقاشی شده میاد بیرون برای چی؟ برای که چهار تا حرفش نمیده چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، چقدر نمیدم، نازه، چقدر فلانه تو حرف اینه اونه که بالاش ببرد فکر میکنه که زیر چشم مردم بالا بیاد کار خوبی کرده. بهتر و برتر شده برتری دیدن خودش را در چی می‌بینه؟ در اون نقش و نمایش می‌بینه؟ نه والله اون نمایشت اون همایشت چیه؟ رسواهیه زشتیه قاله به خودش قاله به اصلیش رو نگاه کن مثل اون بنده خدایی اون شاعری اون ترانخونه که از خونه پدر و مادرش فرار میکنه قصهش من یک گوشش شنیدم از خانومم خودش در قبل از وفاتش قبل از مرگش داستانشو میگه قبل از چند روزی قبل از اینکه بمیره میگه پشیمونم فری به کف زده خوردم کف میزدن به رقص کف میزدن تا رونه بخون فرار کرده بودم میگم اونم تو کابارها می‌خوندن میگه کجا هست کجا نران اون همونایی که کف میزدن پیر شدم پیر نه کسی دیگه نگاهم نمیکنه دیگه به چشم رقصم نگام نمیکنم بخونم به کی بخونم اونا که به صدام که کف نمی زدن و رقصم و تنم می خندیدن و لذت می ازش. نگاه سینه ها و نگاه فدانم می کردن. جوان بودم. ولی دیانم پیر شدم. کی من رو کی از من لذت می بره؟ کی من رو به خواد؟ به معالت به نگاه کن. این کف ها، این بهبه ها، چهچه ها در تو تاثیر نگذاره. الذين لا يخفى تهافتهم الكبير على أخنار روايات خصوصاً جاونا يكروا قصوا رواة دستران وخصوصاً ما تحجفهم ستعيش دستران وهذا النوع من الروايات أحبوله للإلحاد إن رواياتها وقصها وداستنها خصوصاً داستنها يك غير بيها من بسان يك دامية عز دمها الإلحاد برجالونيمه وغالباً ما ينفذ الملاحدة خلال هذه الروايات من مشكلة القدر التي يزعمون خصوصا عز جنبه قضا و قدر و شک و شبه در مورد قضا و قدر مقدرات الهی وارد میشن از قصه ها به تشکیک که في حکمت الباری جل و میان شک و شبه در مقدرات الهی وارد بکنن از, از طریق این روایت ها و قصه و ها او ما يطلقون عليه العبثی الکونیه یا اون چیزی که نامش گذاشتن بیودگی غافرینش الاتی نتیجتها جهد و وجود ربی رب مدبر لکو که نتیجه این کار کردن آفریدگار و این عالم و قال قائل الروایت عبارتون عن قصه لا تحملو فکرا ولا هدف لکاتی بالاخره داستانه داستانه نتیجه یک فکری که اون نویسنده هدفش این نبوده که اصلا یعنی قصد بدی نداشته بر اینکه که مثلا تأثیر بذاره در اون خواننده. جواب میگه فالجواب و مخته اون من ظن خیلی اشتواب میکنه و کسی که فکر میکنه بی نویسنده بیهوده مینویسه بی هدفش القای فکرش نیست اذ روایت و رسالت موجه قصه و داستان هدف از طرف نویسندش. لکنه في قالب قصصي در یک قالب قصه هست در قالب داستان و في هذا يقول شيخ روایین المعاصرين استاد داستان, داستان, داستان معاصر منحرف میگه نجیب محفوظ میگه این العدیب و یختار و شخصیات اون نویسنده و عدیب شخصیات اون داستانشو چنین انتخاب میکنه لأنه وجد صالحة للتعبیر عن شئی ما في نفسی مثلا در نفسه خودش چیزی یک انگیزه رو میبینه شخصیت خودش رو بر اساس اون انگیزه خودش انتخاب میکنه كأن يوجد در شخصیت تتسمو بالضياع مثلا یک شخصیتی گم شده هست گم شده یا پریشانه خب میاد مثلا چگونه این راهشو به دست ورده و راهشو پیدا کرده مثلا میاد این شخصیت را جلوه خاصی بهش میده و که ان الادیبه وقتها یشعره بالضیاه در اون وقت مثلا اون نویسنده مثلا احساس پریشانی و سهدرگومی میکرده او شخصیت ثائره یا مثلا یک شخصیت انتقامگیر خشگین و کان وقتها یعانی من ثورت مکبوته اوزید شما در اون وقت مثلا دچار پریشانی بوده یا دوچار بوده خشم خودش رو نگه داشته کینه خودش در دلش نگه داشته نتونسته ابراز بکنه اومده چی؟ در قالب اون داستان ابراز بکنه اون عقده خودش عقده جوانی خودش نوجوانی خودش اذیت و آزاری که دیده اقده های خودش رو بیاد به نمایش بده و بیاد به خورد ما بده که ما را اقدهی بکنه مثل خودش انسانه اقدهی زیاده جای حسن زند ما نیک بینیم و و اندیشی ما نسبت به دیگران کار دست رو میده فکر میکنیم که همه درستن همه خوبن ولی که والله بدانم زیادن اونایی که اسیر دست شیطانن و مثل یک م... اون مریض و بیمار خصوصا اون بیماری هایی که درمان نمیشه مثل ایکس دوست داره همه مثل خودش دچار تا ایت مثل همون حرفی که اسمان رضی الله عنه دیشب زدی اینکه زناکار دوست دار همه زناکار باشه فهذه الروايات ومثلها المقالات وغيرها يعني رواياتها وإن مقالات لا يلزم بالضرور أن تقدم الإلحاد في صورة صريحة لازم يسكدر إن كتابها ومقالات إلحاد بطولة صريح براسي بشيء فهذا التصور من السذاجة بمكاء يعني صادة لوحية يعني تساوذ بالنسبة إن كتابها نعم قد تكون النزع للحادية ظاهرة شاد مثلاً الحادة دارش واضح ببني وقد تكون داعم للحاد شادم فشتبوني بكون هذا الحاد لا بواجه صريح نبت ولا صريحي وبالتالي فهذا الصنف من الروايات يلقي المتلقي إلى الباب للحاد أو يقرب المسافة إليه إيه إنك مستقيمة ورد الحادش ميكون إيه إنك راه رسدن بالحادة ميكون بهش والحديث عن هذا الموضوع ذو شجون وكشف النقاب عنه يحتاج لمساحة أو ساعة بررسی این مسائلی که راه که اونها میپیماین در نشر الحادشون میگه خب زیاده و کشف از چهره اونها وقتی بیشتری میخواد نگه به همین قد اکتفا میکنیم خب میمونیم نحور چهارومی این کتاب راه ها و وسایل های مبارزه پیشگیری و درمان الحاد که شالله تاخوری که بعد با هم خواهیم داشت انشالله این کتاب تموم خواهیم کرد دیگه یک جلسه مونده جلسه دهم ده یه پنج دقیقه استراحت. از وقت خودتون هم یک ساعت دیگر بدید که انشالله این کتاب تمام بشه چون مسئله امشب این مسئله آخر کتاب مرتبطه با مسئله ما قبل انشالله ادامه ادامه‌ی مطلب را دوباره خواهیم خوند پنج دقیقه دیگر انشالله تشکر از اینکه وقت خودتون دادید جالسيد وحرف مارشيد سبحانك اللهم نحمدك سبحان الله والحمد لله والصلاة على محمد محمد